کتاب افسانه های غول ها. نویسنده محمد شمس، ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده هانیه 3. طلایی در روزگاران دور، زن فقیر و بیچارهی پسری به دنیا آورد که یک کاکل سفیدی روی پیشونیش داشت برای همین پیشگوها پیشگویی کردند که اون توی چهاردهمین سال زندگیش با دختر پادشاه ازدواج میکنه اتفاقا پادشاه روزی به طور پنهانی به دهکده اومد هیچکس اونو نشناخت و وقتی که از مردم پرسید چه خبر تازهای دارن اونا جواب دادن چند روز پیش پسری تو اینجا به دنیا اومد که وقتی چهارده سالش بشه با دختر پادشاه عروسی میکنه پادشاه که خیلی بد قلب و بدتینت بود از شنیدن این پیشگویی به شدت نگران شد پیش پدر و مادر کودک رفت و با لحنی خیلی دوستانه بونا بو گفت بچه تونو به من بسپرید من قول میدم به خوبی از اون نگهداری کنم اونا اول مخالفت کردند اما مرد اونقدر به اونا تلاوت نقره داد تا اینکه سرانجام راضی شدند و بچه رو با این فکر بون دادن که بخت و اقبال این کودک بلنده پس هر چیزی که به اون مربوط بشه برا ما هم شانس میاره پادشاه بچه رو توی جعبه چوبی گذاشت و اونقدر اسب تاخت تا بهی رودخونه امیق رسید جعبه رو تو آب انداخت و با خودش فکر کرد که دیگه از شر این داماد خانده خلاص شدم اما جبه تو آب فرو نرفت و مثل قایقی روی سطح رودخونه شناور شد. جریان آب جبه رو به سمت آسیابی برد که حدود نیم فرسنگ با قصر فاصله داشت. جبه رفت و رفت تا توی صد پشت آسیاب گیر کرد. خوشبختانه شاگرد آسیابون که اونجا وای ساده بود چشمش به جبه افتاد و با چنگکی اون رو بیرون کشید. به این امید که یک گنج حسابی پیدا کرده. اما وقتی که در جبر رو باز کرد، کودک زیبایی رو دید که زنده و سر تون تو خوابیده. اون پیش زن و مرد آسیابون رفت و اونو نشون نشونشون داد. اونا هم چون فرزندی نداشتند، بچه رو به فرزندی قبول کردن و گفتند: "اونو خدا برامون فرستاده." چند سالی گذشت، آسیابون همسرش از اون بچه به خوبی نگهداری کردند. تا اینکه به نوجوونی رشید و برومن تبدیل شد. از قضا یه روز پادشاه برای اون که خیست نشه به آسیا پناه آورد و از ساکنان اونجا پرسید که آیا این پسر فرزند شماست؟ اونا جواب دادن نه. اون یه بچه سرراهیه که چارده سال پیش شاگرد آسیابون بون اونو توی حالی که توی یه صندوق چوبی گذاشته بودن پیدا کرد. پادشاه فوری شستش خبردار شد که این نوجوان کسی نیست جز اون نوزاد بلند اقبالی که خودش توی آب انداخته. پس به اونا گفت، ای زن و مرد مهربون، آیا این جوون میتونه نامه ای رو به دست ملکه برسونه؟ من به عنوان پادشاه به اون دو سکه زر میدم. اونا پاسخ دادن، البته که میتونه، هرچی که امر پادشاه باشه ما فرمانبرداریم. و به پسر جوون گفتند که آماده حرکت بشه. پادشاه نامه به ملک نوشت و به اون دستور داد. به محض اون که این پسر همراه این نامه از را رسید، فرمان بده تا اونو بکشن و دفن کنم. قبل از اینکه من برگردم، باید این کارها انجام گرفته باشه. جوون به همراه نامه به راه افتاد. اما بعد مدتی، راه خودش خودشو گم کرد و اوایل شب به جنگل بزرگی رسید. توی اون هوای تاریک نور ضعیفی رو دید و بعد از اون که کمی جلو رفت کلبه کوچیکی رو پیدا کرد و داخل رفت و چشمش به پیرزنی افتاد که کنار آتیش نشسته بود. پیرزن تا اونو دید وحشت زده فریاد زد. چرا اینجا اومدی؟ چه کار میخوایی بکنی؟ جوون پاسخ داد. پسر آسیابونم. نامه ای از طرف پادشاه برای ملکه می بردم. اما راه خودم رو توی جنگل گرم کردم و اینجا اومدم. زن گفت ای پسر بیچاره تو به خونه دزدا اومدی وقتی برگردن قطعا تو رو میکشن. جوون جواب داد بذار هر کی دلش میخواد بیاد من از چیزی نمیترسم و از طرفی اونقدر خسته هستم که بیشتر از نمیتونم به راه رفتن ادامه بدم. برای نیمکردی دراز کشید و به خواب رفت. مدتی بعد دستی دزدان از راه رسیدن و با بداخلاقی پرسیدند پرسیدن که اون جوان غریبی اینجا چه کار میکنه. پیرزن پاسخ داد. راه خودشو توی جنگل گم کرده و من از روی دلرحمی رحمی اون پناه دادم. اون حامل نامی برای ملک هست. دزدان نامه رو خوندن متوجه شدن که قرار جوون کشته بشه. دلشون به رحم اومد و نامه رو پاره کردن. نامه دیگه ای نوشتن که وقتی جوون به قصر رسید ترتیب عروسی اون با شاهزاده خانم داده بشه. صبح که جوون بیدار شد نامه رو به دستش دادن و روونش کردند. وقتی که ملکه نامه رو گرفت طبق دستورات اون عمل کرد و فرمان داد عروسی با شکوهی به پا کردن و شاهزاده خانم رو به عقد جوون خوش اقبال چند روز بعد پادشاه به قصر برگشت و موضوع رو فهمید. پرسید چطوری چنین اتفاقی افتاده؟ من توی نامه چیزی دیگه ای نوشته بودم. ملکه نامه رو به دستش داد تا خودش اون رو بخونه. پادشاه فوراً متوجه شد که متن نامه عوض شده. از جوون پرسید نامه اصلی کجاست؟ جوون گفت نمیدونم. اگه چیزی تغییر کرده، باید توی جنگل که شب رو توی اونجا خوابیدم اتفاق افتاده باشه. پادشاه که از شدت خشم سرخ شده بود گفت تو به این سادگی خلاص نمیشی. کسی که میخواد داماد من باشه، باید برای من سه موی طلایی از سر غول بیاره. اگه این کار رو کردی، و وقت میتونی با دخترم زندگی کنی. پادشاه امیدوار بود که با این نقشه، از شر جوون خلاص بشه اما جوون پاسخ داد ستاره موی طلایی رو براتون میارم چون من از نمی نمیترسم و به راه افتاد و سفر پر مخاطره خودشو شروع کرد رفت و رفت و رفت تا به شهر بزرگی رسید نگهبانی که نزدیک دروازه شهر ایستاده بود از اون پرسید که چه کار هست و چه ای داره جوون پاسخ داد من همه چیز میدونم نگهبان گفت، پس به ما بگو چرا فواره وسط میدون که همیشه از اون شهد و اصل جاری بود، حالا حتی یه قطره هم آب نداره. جوون گفت، این رو به شما میگم، اما باید صبر کنید تا از سفر برگردم. بعد به راه خودش ادامه داد. مدتی بعد به شهر نسبتاً بزرگتری رسید. فرمانده نگهبانان شهر از او پرسید که چه حرفی میدونه و به چه کاری مشغوله؟ گفت؟ من همه چیز میدونم. پس میتونی یه لطفی در حق ما بکنی؟ به ما بگو چرا درختی که وسط شهر ماست و قبلا سیب های طلایی میداد، حالا حتی یه برگ هم روی شاخه هاش نیست؟ جواب پاسخ داد: جواب این موضوع رو به شما میدم، اما بعد صبر کنید، تا از سفر برگردم. و با گفتن این حرف، باز هم رفتن ادامه داد و رفت تا اون که به دریاچی بزرگی رسید که مجبور بود از روی اون عبور کنه قایقران از او پرسید که چه کار هست و چه حرفی میدونه جوون گفت من همه چیز میدونم قایقران گفت در این صورت لطفی در حق من بکن و به من بگو، چرا من تا ابد مجبورم عرض این دریاچر و پاررو زنان طی کنم و مدام برم و برگردم و هرگز از این کار خلاص نشم جوان پاسخ داد دولت این مسئله رو به زودی میدونی و سب کنید تا من برگردم. جوون تا از دریاچه عبور کرد راه ورودی قلم رو به پادشاهی غول رو یافت. سرزمین سیاه و ترسناکی بود. غول توی خونه نبود. اما مادر بزرگش روی صندلی راحتی بزرگی نشسته بود. اون به جوون خیره شد و گفت اینجا چه میخواهی؟ جوون گفت. من سه تار موی طلایی اثر پادشاه این سرزمین میخوام وگرنه همسرم رو از دست میدم زن گفت این تغذائی بسیار جسورانه است چون اگه اون به خونه بیاد و تو رو اینجا ببینه بسیار بد میشه با این حال تو اینجا بمان تا ببینم میتونم کاری برات انجام بدم یا نه بعد اون تبدیل به یه مورچه کرد و به اون گفت که به میان چینهای شنل بلندش بره چون توی اونجا کاملا توی امان خواهد بود جوون گفت بله جای من بسیار خوبه اما سه چیزی هست که من شدیدا مشتاق دونستن اونا هستم چرا یه فواره که قبلا از اون اصل جاری بود حالا خشک شده و حتی آب نداره چرا یه درخت که قبلا سیبهای طلایی میداد حالا حتی برگ هم نداره و چرا یه قایقران مدام توی عرضی دریاچه عقب و جلو رو و هرگز از پارو زدن راهی پیدا نمیکنه. پیرزن پاسخ داد، اینها سالهای دشواری هستند. اما تو نگران نباش و ساکت بمان و وقتی من سه تاری موی رو از سر پسرم میکنم. خوب به حرفاش گوش کن. شب، گول به خونه برگشت و هنوز پاش رود در اون اتاق نگذاشته بود فریازد. بوی آدمی زاد می آید و همه جا رو گشت اما نتونست چیزی پیدا کنه چون مادر بزرگش در حالی که اونو سرزنش می فریاد کشید من با زحمت همه جا رو مرتب و گردگیری کردم وقت تو داری همه چیز رو به هم می ریزی تو همیشه بوی آدمی زاد توی دماغت داری آرام بگیر و بشین و شامت رو بخور وقتی قول غذایش رو خورد پیرزن. سر اون رو روی دامانش گذاشت و گفت که کمی موهاش رو شونه خواه زد. مدتی بعد بول ای کشید. چند بار پلک زد و سرانجام خورناسش بلند شد. پیرزن یه تار موی تلایی اثر او کند و کنار خود گذاشت. غول داد کشید. آخ چه کار داری میکنی؟ چیزی نیست. خواب بدی دیدم و یکی از موهایت رو کندم. بول پرسید. چه خوابی دیدی؟ خواب فرواری یه بازارچه دیدم که قبلا از اون شهد و اصل میجوشد و حالا خشکیده حتی دیگه آب هم نداره. یعنی اشکالی پیش اومده پسرم؟ بول گفت در زیر سنگی داخل چشمه و نشسته هست که اگه کسی اون رو بکشه اصل مانند سابق جاری میشه. پیرزن دوباره مشغول شانه کردن سر اون شد. تا غول به خواب رفت و چنان به افتاد که چارچوب پنجرهها به لرزه درامدند پیرزن یه تارموی دیگه بیرون کشید غول از خواب پرید و فریاد کشید لعنت بر شیطان معلوم چه کار داری میکنی پیرزن گفت عصبانی نشو من توی خواب این کار رو کردم غول پرسید باز چه خوابی دیدی خواب دیدم که توی یه شهر بزرگ و باشکوه یه درخت میوه میروید که قبلن سیبهای طلایی میداد اما حالا حتی برگ روی شاخهای اون دیده نمیشه این موضوع چه میتونه داشته باشه خول گفت خب معلومه یه موش توی حال جویدن ریشه های اونه اگه اون رو بکشن درخت دوباره سیبهای طلایی میده خب حالا دیگه بگذار بخوابم پیرزن دوباره اون رو تکون داد و خوابوند بعد برای سومین بار یه تار تلاهی از سرش کند. گول با خشم از جا پرید. اما پیرزند اونو آروم کرد و گفت من که نمی خواب بد ببینم. گول چون کنجکاف شده بود باز پرسید این بار دیگه چه خوابی دیدی؟ خوابی یه قایقران رو دیدم که تا عبد مجبور هست به عقب و جلو پارو بزنم و نمی چه چجوری از این وضع نجات پیدا کنه. بول جواب داد اینکه کاری نداره وقتی کسی خواست به اون طرف دریاچه برود قایقران باید پارو رو به دست اون بدهد اون شخص مجبور خواهد بود تا عبد پارو بزنه و قایقران آزاد میشه از اونجایی که پیرزن سه موی تلای کنده بود و پاسخ هرسه سوال رو گرفته بود دیگه غول رو بیدار نکرد و گذاشت تا سبحراحت بخوابد بول تا طلوع خورشید خوابید صبح که غور از خونه خارج شد، پیرزن مورچه رو از لای پرشالش بیرون اوورد و اون رو دوباره به شکل اولش در آورد و گفت این هم تار موی تلایی، پاسخ سوالاتت رو هم که خودت شنیدی. جوون بلند شد و گفت بله همه رو شنیدم و خوب به خاطر سپردم و از پیرزن تشکر کرد و به راه افتاد. جوون از اینکه تا این حد بخت با اون یار بوده بسیار راضی و خوشحال بود و خدا رو شکر کرد. وقتی که به مرد قایق خان رسید گفت اول مرا به اون طرف ببر تا جواب سوالت رو بدم. قایقران اون رو سوار کرد و به اون طرف دریاچه برد. جوون به اون گفت برای رهایی از این کار باید پارو رو به دست کس دیگه ای بدهی. بعد خودش رو به شهر بزرگ رسوند. جایی که درخت بی قرار داشت و فرمانده نگهبانان منتظر پاسخ اون بود. جوون گفت یک موش ریشه های درخت رو میجوه. اون رو بکشید تا درخت دوباره سیب های تلایی بده. فرمانده از اون تشکر کرد و به عنوان پاداش دو علاق که خورجین هایشان پر از طلا بود به اون داد. جوون به راه افتاد و در حالی که دو علاق رو پشت سر خود میکشید به شهر دوم رسید و به نگهبان دروازه گفت در زیر سنگ داخل چشمه وزق نشسته وزق رو بکشید تا اصل دوباره جاری بشه نگهبان از اون تشکر کرد و دو الاغ با بار تلا به اون هدیه داد جوون خوش اقبال به طرف خونه راه افتاد دختر پادشاه از برگشت اون بسیار شادمان شد جوون چیزی رو که پادشاه تقاضا کرده بود به حضورش برد. وقتی چشم پادشاه به چار با بار طلا افتاد بسیار خوشنود شد و گفت حالا دیگه شرایط به جا آورده شدند و تو میتونی با دختر من زندگی کنی اما داماد عزیزم این رو به من بگو که این همه طلا رو از کجا آوردی؟ این واقعا گنجینه بزرگیه جوون پاسخ داد در راه یک قایق من رو از دریاچه ای عبور داد و توی اونجا بود که اینها رو جمع کردم چون مانند شن بر روی ساحل ریخته بود. پادشاه که به شدت به تمه افتاده بود پرسید آیا من نمیتوانم برم و مقداری جمع کنم؟ هر چقدر که دلتان بخواهد. بر روی دریاچه یه قایقران وجود داره که شما را از دریاچه عبور میده و توی طرف دیگه میتونید کیساهای خودتون رو پر کنید. پادشاه تمکار با عجله و شتاب فراوان به راه افتاد و به محض اون که به دریاچه رسید به قایقران اشاره کرد تا به طرف اون بیاد قایق به کنار ساحل اومد و قایقران از اون خواست که وارد قایق بشه به محض اون که به ساحل مقابل رسیدند قایقران پارو رو توی دستان اون گذاشت و خود به ساحل پرید به این ترتیب پادشاه مجبور شد جای اونو بگیره و تا ابد به خاطر جزای گناهانش بر روی دریاچه پارو بزنه اون هنوز هم توی اونجا مشغول پارو زدنه چون هنوز هیچ کس از راه نرسیده که پارو رو از دستش بگیره. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی tme نقطه می مهران دوستی تی Slash, m e a n d o u نشانی <_perikYou> ویبلاگ ما m -E h r a d o u s t i نقطه b مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی